کردیم دگر شیبه رندی آغاز، تکبیر همی زنیم بر پنج نماز، هجا که سراحیست ما را بینی، گردن چه سراحیست سوی آن کرده دراز. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، بازیچه چه همی کنیم وجود، رفتیم به صندوق ادم یک, یک باز. میپرسیدی که چیست این نفس مجاز، گر برگویم حقیقتش هست دراز، است پدید آمده از دریایی، وانگاه شده به غران دریا باز. ما آشو و آشفته و مستیم امروز، در کوی مغان باده پرستیم امروز، از هستی خیشتن به کلی رسته، پیوسته به مهرا و علستیم امروز.